داوند خوبی و پاکی و داد این شانزدهمین روایت من از اثر است که بدون شک اگر کتابی آسمانی نباشد اندیشه های پاک و آسمانی را برای ایرانیان برمغان آورده است خالق این اثر شاهنامه فردوسی بزرگ اگر پیام بر نبود پیامبرگونه پاکی و نیکی و نیکو و نیکو گفتاری و نیکو اندیشیدن را در گستره ایران زمین و در درازای زمان ستایشگر و سخنگو شد ای ایرانیان به گرد اندیشه های پاک این پیامبر ایرانی و کتاب شگفتانگیزش شاهنامه حلقه زنید که رستگاری ما را سبب خواهد شد هموطن شما سعید قائم مقامی روایت پیشین از نخستین پادشاه ایران که امرز انگاه از هفت پادشاه پیشدادی ایران با شما سخن گفتم از گفتم که آتش را کرش نمود از تحورست گفتم که دیوان به روزگار او به ایرانیان خواندن و نوشتن آموختند از جمشید بزرگ گفتم که نوروز یادگار اوست و از فریدون گفتم که در گار او بزر نفرت و کینه بین ایرانیان و تورانیان به دست سلم و تور برقلم روی بزرگ پادشاهی ایران پاشیده شد از منو چهر دلیر و از پسرش نوزر گفتم وانگاه به روزگار پادشاه زود تخماس رسیدیم که فقط پنج سال بر ایران زمین پادشاهی کرد در های گذشته کابه بزرگ و دلیر را شناختیم و با قباد و قارن دو برادر پهلوان و دلیر آشنا شدیم از سام گفتیم و از پسرش زال. که دست پرورده سی شد و از محراب کابولی و همسرش سیندخت شنیدیم که زال عاشق دختر آنها رودابه شد و از رستم گفتیم و از افراسیان بانگاه به پادشاهی کی نخستین نخستیم پادشاه کیانی رسیدیم و سپس به روزگار پادشاهی پسرش کیقابوز پادشاهی که به مازندران لشگر کشید و گرفتار دیوان شد و رستم دلیر با گذر از هفت خان دشوار او را رهایی بخشید و سپس برای از جنگ کیکابوس با شاه هاماوران گفتم آنگاه به ماجرای دردناک کشته شدن سخراو جوان به دست پدرش رستم رسیدیم. و در سروایت پیشیم به زندگی پرفراز و نشیب سیاوش شاهزاده دلیر و پاک نهاد ایرانی پرداختیم. نماد پاکی و راستی، نماد پاداری و پرهیزگاری، ای که هزاران سال ایرانیان در سوی او عشق ریختند و بر این باورند که شقایق از خونه او سر برا. بایتان روایت کردم که سودابه همسر کیکابوس و نامادری سیاوش چگونه به عشق ناپسری خود شاهزادی پاک نهاد ایرانی گرفتار شد و چون سیاوش به عشق گناه آلود او تندر نداد زندگی را چنان بر او تیر و تار ساخت که سیاوش در نخستین پیش مناسب کاخ پدر و پاک تخت ایران را ترک گفت و همراه رستم دلیر به جنگ افراسیاب به مرزهای ایران در کناره جیهون رفت برایتان گفتم که سیاوش دلیر و رستم شکست سختی به سپاه افراسیاب وارد کرده آنها را ناگزیر به فرار و باز پس نشینی کردند. شدیدیم در پی این شکست و به دنبال کابوس دهشتناکی افراسیاب بران شد تا با سیاوش رستم و ایرانیان از در آشتی در آمده به جنگ و خونریزی پایان دهد پس یک ست از بستگان و نزدیکان خیشا به رسم نوا به رسم گروگان به نزد سیاوش به برق فرستاد و سپاهیان خود را از شهرهای ایرانی تراخان اما که کاووس پیشنهاد آشتی افراسیاب را نپذیرد. و رستم دلیل را برای پذیرش این آشتی سخت سرزنش کرد و سیاوش خواست گروگان‌های های افراسیاب را به نزد او بفرستد تا سر از تنشان جدا سازد شنیدیم که رستم خشب این به زاولستان بازگشت و سیاوش و تنها در این تردید گرفتار آمد که آیا به درخواست پدرش کیکاووس با افراسیاب پیمان شکنی کرده و گروگانهای او را به چنگ پدرش گرفتار سازد و یا آنکه از فرمان پدر سر بپیچد و برای همیشه ایران را ترک گفته گوشه انزوایی گزیده باقی عمر را در گمنامی بسر برد برایتان گفتم سرانجام سیاوش دلیر به بحرام و زنگی شاوران دلاوران جوان همراهش گفت که فرمان خداوند بالاتر از فرمان پدرم پادشاه ایران است. من با یا پیمان شکنی نخواهم کرد و هدایا و گروگانهای او را به دو باز خواهم گردان و فرماندهی سپاهیان ایران را که آمدن توس به شما سپرده از افراسیاب خواهم خواست بگذارد از سرزمین توران عبور کرده گوشه انزبایی دور از خشم پدر و پریب های خواهی نامادری هم سودا به اختیار کنم افراسیاب با شنیدن آنچه بر سیاوش گذشته بر او رحمت آورده به درخواست و سپارش پیران خردمند پهلوان بزرگ تورانی و مشاور بیدار دلش سیاوش را زمین و با او پیمان داد که او را همچون پسرش گرامی خواهد داشت سیاوش پس از تردید بسیار با نوشتن نامی به پدر و شرخ و بیان دردهایش با او بدرود کرده با چشم بار یاران و دلاوران و سپاهیان همراهش و ایران و شهرهای های سر راه را ترک گفته با سپاهیانی که خواستاره با او بودن بودن به توران زمین پناخنده شد برایتان گفتم در توران زمین افراسیاب سخت سیاوش را گرامی داشت و دخترش فرانگیس را به همسری او درآورده. آورده فرمان یک بخش های بزرگی از سرزمین خود را به او سپرده و سیاوش زندگی را در کنار افراسیاب آغاز کرد سیاوش پس از سالی زندگی در کنار افراسیاب به درخواست و فرمان او به سرزمین های فرمان روایش را و آن دیار شهر بزرگ و زیبای سیاوش را برپا کرد. اما دریق و در که اخترشناسان به او آگاهی دادن این شهر برای او شهر فرخنده و مبارکی نخواهد. سیاوش نیست خود پیام برگونه به پیران آگاهی داد که بهزودی خونش ریخته خواهد شد و بار دیگر بین ایران و توران جنگهای بزرگ خونینی بر سر خون ریخته شده او در خواهد گرفت و این همه از حسادت و پلیدی است که مهر افراسیاب به او را بر نمیتابند این کسان گرسیب از برادر افراسیاب و یارانش چون دمور و گروی زره بودند که بارها در برابر شجاعتها و دلاوریها و هنرنماییهای سیاوش احساس شکست و کوچکی و حقارت کرده بودند آری گرسی وز نهاد برادر افراسیاب با گزارش های سراسر دروغ خود از قدرت گرفتن سیاوش و امکان شوریدن او دل و مغز افراسیاب را آگنده از خشم و تردید کرد تا آنکه سر انجام افراسیاب بران شد سیاوش و دخترش رنگی را به نزد خیش بخواند تا از اندیشه های خوب و بد آنها آگاه گردد پس افراسیاب به گرسی و از گفت به نزد سیاوش رو و به او ده که ما دلتنگ او و دخترمان فرانگیز هستیم چندی به نزد ما آمده میهمان باباش و بدینسان اینسان گرسیوز پیک مرگ به سوی سیاوشگرد به راه افتاد گرسیوز به سیاوشگرد رسیده است و از همان آغاز توطه شوم خود را تدارک میبینه با خود میاندیشد باید ای بیندیشم تا سیاوش استحبال من نیاید تا بتوانم به برادرم افراسیاب بگویم که او آنچنان و چاره که غرور گشته که برادر نیز پذیره نمی شود پس ای به داخل شهر و به نزد سیاوش فرستاده او را به سر و جان افراسیاب سوگن میدهد. که به پیش بازو استقبال من نیا، چرا که تو با ارزش تر از آنی که با هر بادی از جا جنبیده و از هر کسی خود استقبال کنید برا راستگرسی وزه دامساز دری پر کینه سری پر راز چون از دیک شهر سیاوش رسید زلشگر زبان آوری برگذید بدو گفت رو با سیاوش بگوی که ای باگ و هر نام به جان و سر شاه توران سپاه به جان و سر و تاج کابوز شاه که از بحر من بر نخی زیزگاه نپیش منایی پذیره راه که توزان فزونی به فرهنگ و بخت به فرل و نژاد و به تاج و به تخت که هر باد را بست مایت میان توهی کردنان جایگاه کیان سیاوش پیشنهاد گرسیوز را میپذیرد و در کاخش گرسیوز را پذیره میشود گرسیوز در کاخ سیاوش پیام دعوت افراسیاب را به او میدهد و سیاوش شادمان به او میگوید روز میهمان من باش با هم شادی کرده باده خوریم بانگاه برای دیدار شاه افراسیاب به راه خواهیم افتاد گرسیوز بدنهاد با شنیدن حرفهای سیاوش در دل میگوید اگر پای سیاوش به کاخ را برسد تمام دروغهای من پاش می شود. پس باید چاری بیندیشم چون گرسیوز آمد به درگاه اوی پیاده بیامد از ایوان بکود بپرسیدش از راه و از کار و شاه ز رسم و سپاه و ز تخت و کلاه پیام سپختار توران بدار سیاوش ز پیغام او گشت شاه چون این دار پاسخ. از یاد اوی نتا بمزه تیغوزه الماسون من اینا کمر برمیان بستم انان با انان تو پیوستم سر روزن در این گلشن زرنگار بباشیم و از باده گیریم کار که گیتی سپنج است پر درد و رنج بعد آن را که با قم زید در سپنج چون بشنید گفته خردمن شاه بپیچید گرسیم از ایکین خواه به دل گفت ریدونش با من براه سیامش بیاید به نزدیک شاه بدین شیر مردی و چندین خرد گمان مرازین پی بسپرد سخنگفتن من شبد بیفروگ شبد پیش اوچاقه من دروغ یکی چاره باید کنون ساختن دلش را به راه بدن داختن پس گرسی وزه پست و حسود ناگهان خود را غمگین و گریان می نماید. سیاوش با دیدن چشمان عشقالود او شگفت زده و سر مه میگوید به من بگو بر تو چه رفته است که این چنین قمگینی حتی اگر شاه تو را آزرده ساخته و بر کوچکتر خود ستم روا داشته با او به جنگ برخواهم خواست اگر مردم دروغگو و حسود تو را از چشم برادرت افراسیاب ها و جای تو را گرفتن چاره کارشان خواهم کرد درد خود را با من بگو آری گرسی وز پلیب به چشمان خیش دروغین عشق نشان داد. زمانی همی بود و خاموش بماند دو چشمش به روی سیاوش بماند فرو ریخت از دیدگان آب زر به آب دو دیده همی چاره کرد سیاوش و پر آب چه به سانه کسی کوب بپیچه از به دو گفت نرم ای برادر چه بود همی هست کن را نشاید شنون که از شاه توران شدستی دوشم بلیده دراوردی از درد نم من اینک همین باطایم به راه کنم جنگ با شاه توران سپا بدان تازه بخرت چه آزاردد چرا کهتر از خیشتن و گر دشمنی آمدستت پرید که تیمار و رنجش به ماید کشید من اینک به هر کاریار تو چو چه جنگ آوری مایدار تو هم بریدون که نستی که افراسی را تیره گشته است بر خیر آب به گفتار مرد دروغ آزمای کسی برتر است و گرفته است جای همه راز این کار با من بگوی که تا باک شمد زینقمان چار جون گرسی وز در پاسخ این همدردی سیاوش به گفتن دروغ بیشرمانی آغاز می کند که درد و اشک من برای خود نیست گذشته ها می رود تا تکرار شود شنیده ای که تور چگونه خونه ای خاموش و مهربان را و چکینه ای را پای گذاشت که تا امروز و تا روزگار افراسیاب دوام آورده است و ایران و توران چون آتش و آب از آن پس هرگز در کنار هم آرام نگرفتند بدان که فرمان روای توران برادرم افراسیاب از تور هم بهتر است اما چون گاو پیسه دورنگ و دروست راست برادرش را به یاد آور که از یک تبار و یک کالبت بودن و به دست او کشته شد و بسیع گناهان دیگر تا اینکه تو به این سرزمین آمدی تو که آزارت به هیچ کس نرسیده است اینک من دل او را از کینه تو هم است من که دوستار تو هم ناگزیر بودم این داستان را برای تو بگویم که پردا نگویی میدانستی و نک بدو گفت گرسی وز ای نام دار مرا این سخن نیست با شخیار نه از دشمنی آودستم برنج که از تار دورم به مردی و گنج زگو هر مرا در دلن نیش خواست که یاد آمدم آن سخنهای راست نخستین زتورم در آمد بدی که برخاست زغفر ره ای ایزدی شنیدی که با ایرج کمسخن به آغاز کین چفگند بون؟ و آنجا آن تا به افراسیاب شدست آتش ایران و توران چو آب به یک جای همگه نیا میختن زپند و خرد دور بکنیختن سپهدار توران از آن وقتر است کنون گاب پیسه به است ندانی تو خوی بدش میگمان بمان تا بیاید بدی را زمان دخستین از اقلی رس اندازه گیر که بر دست او کشته شد خیر خیر برادر هم از هم همز پشت چنان پرخرت بیگناه را بکشت بس آن پس بس این نام بر بیگناه شدستند بر دست او بر تبا مراز این سخن بیش اندوه توست که بیدار ها و تندروست تو تا آمدستی به این بوم و برد کسی را نیامد ز تو به همه مردمی جستی و راستی جهان را به دانش بیا راستی کلون خیر احری من دل گسل فرا از تو کرده از پرداغده. دل دلی دارد از تو پرد در مکن ندانم چه خواهد جهان آفری تو دانی که من دوست تو ام به هر نیک و بد بیش یار تو هم نباید که فردا گمانی بری که من بودم آگاه از این داور. سیاوش پاکدل به گرسی میگوید بیخوده نگران مباش افراسیاب اگر میخواست با من بد کند تاج و تخت و فرمانروایی به من نمیبخشد و مرا برتر از دیگران نگه نمی داشت من اینک با تو به نسل او خواهم رفت و دل پر مهر خود را به اون نشان خواهم داد گرسی بس به سیاوش میگوید تو او را بدان گونه که باید و شاید نمیشناسی روزگار اینک با تو خشم آورده است و تو از مهری که در دل نسبت به افراسیاب داریم نمی توانی او را درست بشناسی او تو را با تنبل با جادو فریب داد و با اروند با مکر و حیلگری چشمت را بسته است نخست تو را داماد خیش کرد آنگاه به تو فرمان روایه تاج بخشید تا سرهنجام روزی بتواند بگوید تو مقرورانه به او گستاخ گشته او کسی است که با خنجر برادر خود اقریرس را به دونیم کرده است آری تو پدر و ایران را ترک کردی و دل به مهرف سیاب بستی و درختی با دستان خود کاشتی که بار و پیوندش زهر و تلخ است سیاوش بدو گفت من از این است با من جهان آفریم سپه جزین کرد ما را امید که بر من شبارد روز گر آزار بودیش در دل من سرم بر نیفراختی زنجمن ندادی به من کشور و تاج و و فرزند و گنج و سپا کنون با تا به درگاه او درخشان کنم تیرگون ماه او هر آنجا که روشن شود راستی فروغ دروغ آورد کاستی نمایم دلم را به افراسیا درخشان تر از بر فهر آفتا تو دل را به جز شادمانه مدار روان را به بد درگمانه مدار به دو گفت گرسی بز. ای میخبا تو او را به دانسان که دیدی مدان و دیگر به جایی که گردان سپر شود تند و چینم در آرد به چه خردپند را کرد باید و سون که از چمبر او سرارت برون بدین دانش و این دل خوشمند بدین بالا و رای بلند ندانی همیچار از از باز نباید که بخت بدامت و راست همه مرد تو را بند و تنبل و چشم خرد را بدوید لخوست آنک داماد کردن بدان به خیره شدی زان شاد شادکام و دیگر کت از خیشدن دور کرد به روی بزرگان یکی سور کرد بدان تا تو گستاخ گشتی بدوی و رو در جهان گفت و گفت تو را همز اقریرسه خوشمن، وزن نیست خیشی یا پیمند میانش به خنجر به دونیم کرد سپه را به کردار بدبیم کرد نهانش ببین آشکارا کنون چون این دان و ایمن مشو بخون مرا هرچند در دلندیشه بود خرد را و از هر دری پیشه بود همان آزمایش بدان روزگار از این چینه بر تیر دل شهریار همه یک به یک تو راندم چو خورشید تابنده برخاندم به ایران پدر را بی انداخت. به توران زمین جای ساخت چون این دل بدادی به گفتار اوی بگشتی همی گرد تیمار او درختی بودیم برنشانده به دست کجا بار او زهرو بیخش کبه سی آنگاه بنا یک میگذارد سیاوش نیز عشق بر رخسارش جاری است به یاد سرنوشت شومی میافتد که برایش رقم زده شده است که دیر زمانی نخواهد زیست و روزگارش در جوانی زود به سر خواهد آمد پس به بگرسی بز میگوید هر چه میاندیشم میبینم من کار بدی نکردم که سزاوار جزای بد باشم اسمن نه کسی گفتار بد شنیده و نه کسی کردار بد اما گر چه ممکن است از افراسی ها به من بد من از دستور رو سرباز نخواهم زد و به همراه تو بی سپاه به نزدش خواهم رفت تا بدانم چرا در پی آزار من است آری گر سیوز فریب کار اشک دروغین میریزد همی گفت و مجگان پر از آب زرد پر افسون دل و لب پر از باد سرد سیاوش نگه کرد خیره بدوی زدید نهاد بروخ دوجوی. و جوی و یاد آمدش روزگار گزند که از او ببسلد مهر چرخ بلند نماند بر او بربسی روزگار به روز جوانی سرایادشكار دلش گشت پر درد و رخسار زعر پر از غم روان لب پر از باد گفت هر چون همی به دو گفت هرچون همی بنگرم به بادت ره بدنندخخ گفتار و کردهار از پیچ و پس من هیچ نخوب نشه اگر است وگرچه بدایت همی برسرم هم از رای و فرمان اون نکسرم، بیایم کنون با تو من بی سپاه ببینم که از چیست آزارش گرسیب از پلید میداند. اگر پای سیاوش به کاخ افراسیاب برسد کاخ فریب کاری و ویران خواهد شد پس همه کوشش خود را به کار میگیرد تا از رفتن سیاوش به نزد افراسیاب جلو گیرد پس به او میگوید با پای خودت خودت را به درون آتش می‌انداز. من تو را یار و یاور خواهم بود نامه ای به افراسیاب بنویس و خوب و بد را باز بود. من با نامه به نزد او خواهم رفت و میکوشم او را دوباره با تو سر را برم اگر از خشم او کاسته شد تو را آگاه خواهم کرد اما اگر کماکان خیال بد در سر داشت به شتاب برای فرستاده ای گسیل خواهم کرد تو آماده باش تا خودت را به سرزمین دیگری برسانی از اینجا تا چین 120 پادشاهی و فرمانروایی و از اینجا تا ایران 340 پادشاهی و فرمانروایی است که همگی دوستار تو و بنده پدرت شهریار ایران هستند و نهی پدرت در انتظار بازگشت توست تو اینک برای تمامی آنها نامههایی بفرست و آماده باش بدو گفت گر از ای نام تو را آمدن نزد اون نیست رو به در آتش نباید شدن نه نپیش بلا داستان آتدم همی خیره بر بچه تو آوری سر بخت خندان به خواب آوری تو را من همانا بسم پای مرد بر آتش یکی برزدم باد سر یکی پاسخ نامه باید نوشت پدیدار کردن همه خوب و زشت زکین گر ببینم سر اوتوهی درخشان شبد روزگار بهی سواری فرستم به نزدیک تو درخشان کنم رای تاریک تو امیدستم از کردگار جهان شناسنده آشکار و نهان که از این باز سوی راستی شبد دور از او کشی و کاستی و گر بینم در سرش هیچ تاب هیونی فرستم همان در شتاب تو زانسان که باید به زودی بساز مکن کار بر برکیشتن بردراست ندور است از ای در برکشوری و بر هر نامداری و هر بهتری 120 دارند از ای در بچین همان سی و چل به ایران زمین از این سو همه دوستار تو هست و گرفنده شهریار تو هست و آن سو پدر آرزومند توست جهان بنده و شهر ای توست بر سو یکی نامهی کند راست و سی جیده باشد درنگی مساست سرانجام سیاوش مهربان و شریف فریب گرسی وز را خورده جان بیدارش قنوده خفته به گرسی وز میگوید هرچه میگویی میپذیرم برو و نزد افراسیاب با خواهش و مهر محبت او را دیگر بار برای من بخوا سیاوش به گفتار او بگروید چنان جان بیدار او بغنوید بدو گفت از آن در کرانی سخن ز گفتار رایت نگرم زپند تو خواهش کری کن مرازو بخواه همه راستی جود و فرمان و راه آنگاه سیاوش نامهی به افراسی آب نوشته و به دست گرسی وز می سپارد سیاوش در نامهی خود فراوان افراسی را ستایش کرده و از اینکه او را به نزد خود خانده شادمانی میکند. اما به وی می نویسد فرنگیز همسرم بیمار است و بین دو جهان مرگ و زندگی دست و پا می زند نه لبش توانا به و چریدن است و نه تنش توانا به جنبش و چمیدن چون درد او سبکتر شود به نزد تو خواهیم شتافت دبیر پژوهنده را پیش سخن های آینده را بر پشاند. نخست آفریننده را یاد کرد فام خرججانش آزاد کرد از آن پس خرد را ستایش گرفت ابر شاه توران نیایش گرفت ای شاه پرداد و بهروز کار زمان مبادا ز تو یادگار مرا خواستی شاد گشتم بدان که بادا نشست تو با مو بدان و دیگر فریگیس را خاستی به مهر و وفا دل بیارازدی فریگیس نالنده بود این زمان به لب ناچران و به تن ناچمان بخفت و مرا پیش بالین ببست میان دو گیتیش بینم نشست مرا دل پر از رای و دیدار توست که کشور پر از گنج و کردار توست ز نالندگی چون سبکتر شود پدای تن شاه کشور شود. بهانه مرا نیز از آزار اوست نهانم پر از درد و تیمار اوست چون نام نوشته می شود. و سیاوش آن را مخر می کند، گرسیوز سعصب تیز را می گیرد و شب و روز می تازد و خود را به افراسیاب می رساند. چون افراسیاب از گرسیوز دلیل خستگی و آشفدگیش را جویا می‌شود و می‌پرسد چرا چنین زود بازگشتی، گرسیوز نامرد می گوید چون کار تیرگی گرفته، درنگ را نپسندیدم، بدان که سیاوش حتی برای پذیر شدن من از کاخ خود نیز بیرون نیامد. نه پیام مراشنی و نه نامه تو را خود چه فراوان از ایران برای اون نامه رسیده بود از روم و از چین هم سپاهیان فراوان بگردش گردش فرا هم آمده است بدان ای برادر اگر در کار با او سستی کنی جز بعد چیزی در چنگ نخواهی داشت اگر دیر کنی او به جنگ تو بیاید و دو کشور را به چنگ خواهد آورد و اگر راه ایران را در پیش گیرد چه کس می تواند در برابرش بایستد برانچ را که دیدم گفتم از این پس تویی که از رفتار خود برانچ خواهی بود چو نامه از به محرنده درآمد بداد، به به زودی بگرسی گرسی وزه دلاور سعص به تقاور بخواست همی تاخت یک سر شب و روز راست چهارم بیامد به درگاه شاه پر از بد زبان و روان پر گناه پراوان بپرسیدش افراسیاب چو دیدش پر از رنج و سر پر شتاب چرا با شتاب آمدی؟ گفت شاه چگونه سپردی چنین دور را؟ برا گفت چون تیره شد روی کار نشاید مردن به بدروز کار سیابش نکردی هیچ در کس نگاه پذیره نیامد مرا خود را سخن نیز نشرید و نامه نخواند مرا پیش تختش به پایان نشان از ایران به دو نامه پی بسته بود به ما بر در شهر او بسته بود سپاهی ز روم و سپاهی ز چین همی هر زمان برخ روشن زمین تو بر کار او گرد رنگ آوری مگر بعد از آن پس به چنگ آوری اگر دیرگیری تو جنگ آورد دو کشور به مردی به چنگ آورد وگر سوی ایران براند سپاه که یارد شدن پیش او چین خوا. تو را کردم آگه صدی داره هیچ از این پس بپی چیزه کرداره آری، دریغ و درد، کینتوزی و حسادت و خیانت گرسیب از کار خود را میکند و افراسیاب کوتف فکر در دام مکر و فریب و گرفتار افراسیاب دستور میدهد سپاهیان توران برای نبرد باسیابش از کنگ مرگز فرمان روایش براه افتن. او درخت کینه تازه ای را بر بستر خاک توران زمین برمی نشاند بشنید افراسی این سخن بر او تازه شد روزگار کن. به از خش پاسخ نداد دلش گشت پرزاتش و سرچ و باد بفرمود تا برکشیدند نای همان سنج و شیپور و هندی درای برون آمد از کنگ خندان بهش درختی زکینه به نفوی بکشت سوی با رفتن گرسیب از سیاوش به نزد فرنگیس می رود و همسرش را از آنچه گرسیب از گفته آگاه می کند فرنگیس با شنیدن این ماجرای ها ناک سخت می گرید و چهره خود را میخراشد خراشد و به سیاوش می گوید اینک چه باید بکنید کجا می توانی نزد پدرت کیکاووز که خود دلی دردمند از تو دارد بروم و چین اگر روی با رنج و ننگ روبرو خواهی شد جز خداوند، کس پناه توست پریگیست بکرفت گیسو به دست گل و را به فندق بخر همی کند موی و همی ریخت آب؟ ز گفتار و کردار اپراسی آم به دو گفت ای شاه گردن فراز چه سازی کنون زود بکشای راز پدر خود دلی دارد از تو به درد از ایران نیاری سخن یاد کرد سوی روم رخ با درنگ آیدن نپوی سوی چینکه ننگ آیدن زگیتی کرا گیری اکنون پناه پناهت خداوند خورشید و ماه <تصفيق> چهار روز شب تیره و تار و غمانگیز بر سیاوش و همسر با وفایش فرنگیز می تا آنکه در چهارمین شب سیاوش خواب شگفتی می فریاد زنان از خواب بر او را در بر گرفته و از کابوسش میپرسد سیاوش به او میگوید در خواب دیده است یک سویش رودخانه شگفتانگیز و خروشانی جاری است و در سوی دیگرش آتش خولناکی زبانه می کشد و پیشا پیشش پیل های جنگی و افراسیاب است که به او خشم این و دشم چشم خورده است چهارم شبان در بر ماه روی به خواب بود با رنگ و بود. بلرزید و از خواب خیره بجست خروشی برآورد چون پیل مست بپرسید از او دخت افراسیاب فرزان شاه چه دیدی بخواب سیاوش بدو گفت از خواب من لبت هیچ من بر انجامن چنان دیدم ای سر به سیمین به خواب بودی یکی بی رود آه یکی کوه آتش به دیگر کران گرفته لب آب نیز بران ز یک سو شدی آتش تیز و گرد بر افروختی زوز یا وقش گفت زیگ دست آتش زیگ دست آب به پیشندرون پیل و افراسیا بدیدی مرا روی کردی دوشم دمیدی بران آتش تیزدن همسرش همسرشا دلداری میدهد که این خواب خواب خوبی است اما سیاوش آرام نمیگیرد صبح هنگام خود آماده در کاخش نشسته و به طلایداران سپاهش دستور میدهت که بین سیاوش گرد و کنگ پاسداری کند و دیری نمیگذرد که پیشاهنگان سپاهش به او آگهی میدهند که افراسیاب و سپاهانش از دور دیده شدند همزمان ترس هم از سوی گرسی و نهاد میرسد که در پی پاسداری از جان خود باش که گفتار من نزد افراس سودی نبخشید نگاه کن تا چه باید بکنی و سپاهیانت کجا باید روند سیاوش سفهر را سراسر بخاند به درگاه ایوان زمانی بمان و بنشست خنجر به چنگ طلایه فرستاد بر سوی کند چو از تیر شب در گذشت سبار طلایه بیامد ز دشت افراسیاب و فراوان سپاه پگید آمد از دود تازان برا ز نزدیک گرسی و سامد نبند بر چاری جان میان را ببند نیامد ز گفتار من هیچ زود از آتش ندیدم جز از تیر دود بگر تا چه باید کنون ساختن سپه را What job are you now? افراسیاب به سیاوش گرد رسیده است گر از فریبکار به سیاوش پیام فرستاده است که کوشش هاگ من بی ماند و افراسیاب آمده است تا خون را بریزد فرنگیس از سیاوش خواسته است که در اندیشه او نباشد و با گریختن جان خود را از محلک خشم پدرش افراسیاب نجات بخشد و سیاوش بران است تا بماند و سرنوشت را هرچه شوم و زشت خوش آمد گوید چه او پیش پیش از پایان کار آنا است. مرنگیز با شنیدن خبر از راه رسیدن پدر و سپاهیانش به سیاوش میگوید در اندیشه ما نباش و به شتاب بگریز و جان خود را از این مهلکه سالم بدر ببر. سیاوش به همسر مهبانش میگوید این خواب من است که تعبیر می شود زندگی من به پایان میرسد. اگر هزار و سال هم عمر کنم سرانجام خاک تیر جای من است یکی به دست شیر کشته می شود و دیگری به چنگ کرکس و یا همای انگاه سیاوش به یاری فرهی زدی خیش از آینده با همسرش سخن گفته به وی میگوید تو اینک پنج ماه هست که باردار هستی اگر فرزند ما پسر شد نام را کیخس خسرو بگذار که شهریار و پادشاه بزرگی خواهد شد آری از فرمان خداوند نمی توان سرپیچی. نه حالی و بستر مرگ من خاک توران بود بخت تیره من به دست افراسیاب به خواب خواهد رفت سر مرا بی خواهند برید. نه تابوت خواهم داشت نه گور و کفن چون قریبان و بی‌کسان پیکرم به روی خاک خواهد افتاد پاسداران پدرت تو را به خاری و زاری پیاده راه خواهند برد تا آنکه سپهدار پیران به خواهش جانت را از چنگ پدر نجات خواهد بخشید و در خانه او به سرخواهی بود تا آنکه مردی پهلوانی از ایران بیاید و تو و پسرمان را از جیهون عبور داده با خود به ایران برند انگاه از ایران سپاهیان انبوهی برای کنجوی به توران آیند جهان به فریاد در خواهد آمد که خسرو پسر من نیز بزرگ شده دنیا را به جوش و خروش در خواهد آورد. پی عصب رستم دلیر خاک توران را خواهد داشفت که این توزی بزرگی که گویی تا رست خیز ادامه خواهد داشت سیاوش انگا با همسرش پترود و وداع ناکی کرده به او می گوید من رفتنی گشتم تو خود را آماده این ها کن آری سیاوش در پاسخ همسرش که به او پیشنهاد گریختن می کند چنین پیام بر گونه از آینده دهشتناکشان سخن میگوید. فریگیس گفت ای منشا من شا مکن هیچ گونه به ما در نگاه یکی باره گامزن برنشین بر نشین مبا ایمن به توران زمین تو را زنده باید که مانی به جای سر خیشگی رو کسی را مپا سیاوش به دو گفت هن خواب من به جای آمد و تیره شد آب من همرا زندگانی سر آیت همین غم روز تلخندر آید همین چونین است کار سپهر بلند گهی گه شاد دارد گهی گه مستمند گریبان من سر به کیبان کشید همان گیتی بباید چشید اگر سال گردد هزار و دویست جز از خاک تیر مرا جای نیست یکی سینه شیر باشد جا یکی چنگ کرکس بود گر همای ز شب روشنایی نجوید کسی کجا بهره دارد ز دارش بسی. تو را پنج ماه است از آبستنی از این نام بر بچه رستنی درخت تو گرنر ربار آورد یکی نام بر شهری ها را آورد سرفراز کیخست نام کن به غم خوردن او را دلارام کن ز خورشید تابنده تا تیر خاک گذر نیست از دادی از دانتا چون این این گمبت تیز را سرای کهن را نخوانم نو و این پس به فرمان افراس یاب مرا تیر بختن درایت بخواب ببرن بر بیگ و نحبر سرم ز خون جگر برنهند افسرم سرم نه تابوت یابم نه گور و کپن نه بر من بگریان زارن جمن بمانم به سان قریبان به خاک سرم کرده از به شمشیر چاک بخاری تو را روزبانان شاه سر و تن به رهنه برندت به راه بیاید صفهدار پیران بدر به خواهش بخواهد تو را از پدر به جان بیگنه خواهدت زینهار بیوان خیشد برد خا از ایران بیاید یکی چارهگر به فرمان دادار بست کمر از در تو را با پسر در نهان سوی رود جیهون برد ناگهان نشانت بر تخت شاهی برد. به فرمان شود مرق و ماهی برا از ایران وسیلشگر آید به چین شوب گردد سرا سر زمین بر این گونه خواهد گذشتن سپه نخواهد شدن رام با من بمین و سالشگر آ کسب یکین من به جوشن برای من زگیتی برایت سراسر خروش، زمان ز خسر به جوش پی رخش روی زمین بسپرد ز توران کسی را به کس نشمرد بکینم از امروز تا رست کیز نبینی جز از گرز و شمشید خریگیس را کرد پدرود و گفت من رفتنی کشتم ای این نیفت رفت بر گفت گفت بر تو دل سخت کن تن از ناز و از تخت پردخت ردوسی بزرگ با دلی از جهان و روزگار میپرسد چرا انسانها را به جهان میآوری و میپروری و اگر چنین میکنید چرا آنها را چون سید می‌شکاری و شکار میکنی جهانا ندانم چرا پروری چو پرورده باشی چرا بشکری چون سخنان سیاوش را میشنود خود را در آغوش همسرش انداخته سخت می گرگد. سیاوش انگاه به آخر اسفانش رفته اسبش شبرنگ بهزاد را از آخر بیرون آورده دهنه و افسار از او برگرفته سر در گوشش گذاشته به او میگوید از آخر دل بکن بگریز به دور دست ها برو. چون روزی که کی برای جنگ به این سرزمین خواهد آمد اسبش تو خواهی بود شبرنگ رها شده به سویی در دور دست ها می گریزد و سیاوش و همراهانش به سوی ایران حرکت می کند فریگی سرخ و کند و پر موی زود دل پر از آب روی سیاوش چوبا جفت به بگفت خروشان به دوید در جفت روخش پرزه خون دل و دیده سوی آخره تازی اسبان گذشت. بیاورد شبرنگ بهزاد را که دریافتی روز کین باد را خروشان سرش را به بردر گرفت ازار و فسارش ز سر برگرفت به گوشندرش گفت رازی دراز بیدار دل باش و با کس مزاز چو کیخو به بکین خواستن انانش پرابان راستند. از آخور ببر دلبه بارگی که او را تو باشی به بارگی دگر مرکبان را همه کرد پی، برافوخت بر سان آتش زنی خود و سرکشان سوی ایران کشید، رخ از خون دیده شده ناپنید سیاوش و مردانش هنوز نیم پرسنگی راه نرفته با سپاهیان افراسیاب روبرو میشوند و خواه و ناخواه سیاوش و ایرانیان همراهش در برابر افراسیاب و سپاهیانش صف میکشند افراسیاب با دیدن سیاوش زره بر تن پوشیده و آماده نبرد در دل میگوید گرسی سیو راست میگفت سیاوش نیز از پرس جانش با افراسیاب ادای احترام میکند مگر گفته بدخواهانش نزد افراس یا بی اثر شود. همه خاموش یک دگر را می نگرند. ایرانیان همراه سیاوش خود را آمادیر بیختن خون دشمن میکنند و با سیاوش به جنگ و جدل میپردازند که نباید گذاشت ما را به خاک و خون بکشند. بگذار دلاوری ایرانیان را آنها نشان دهید. یک نیم پرسنگ ببرید راه رسیدند رو شاه توران سپاه. سفه دید با تیغ و خود و زره سیاوش زده برزره برگره به دل گفت جرسیب از این راست چون این راستی را نباید کن سیاوش بپرسیدش از بیم جان مگر گفته بدخواه گردد نهان همی بنگریدین بدان آن بدین که کینه نبود شان به دل پیش از این سیاوش سواران جنگ گرفتند آرام و خوش و درنگ رده برکشیدند ایرانیان ببستند خون ریختن را میان همه با سیاوش گرفتند جنگ ندیدند جای پسوس و درنگ کنون خیره گفتند ما را کشند نباید که بر خاک تنها چشند به از ایرانیان دست برد ببینند و مشمر چنین کار خوب سیاوش در پاسخ دلاوران ایرانی میگوید سرشت و تربیت من جنگ با پادشاه و بزرگتر را ننگ بیمانه. اگر چرخ گردان بران است تا مرا بیگناه نابود کند من چنان زور و توانایی ندارم که با کردگار و آفریننده چرخ و جهان به جنگ برخیزم خردمندان گفتند با اختر و بخت بد خود ستیز مکن. آنگاه سیاوش از افراسیاب می میپرسد: ای شاه پرهنر چرا میخواهی مرا بیگناه بکشی چرا می کین در دل دو سپاه برپا کنی و نبین زمین و زمان را برای خود بخری گرسی وز بدنهاد که میخواهد جلوی گفتگو و آشتی را بگیرد پیش دستی کرده به سیاوش می اگر بیگناهی و خیال جنگ نداشتی چرا چنین با خود و زره نزد شاه آمدی؟ برای استقبال از پادشاه با خود تیر و کمان و سپر حدیه نمیآورند آورند ایرانیان همراه سیاوش از او برای جنگ اجازه میخواهند. سیاوش چون این گفت این رای نیست همان جنگ را مایه و پایی نیست به گوهر بران روز ننگ آوریم که پیش خسر حدیه جنگ آوریم برای چرخ گردند گرمی گناه به دست بدان کرد خواهد تواه به مردی مرا زور و آهنگ نیست که با کردگار جهان جنگ نیست چه گفتان خردمند بسیار هوش که با اختر بد به مردی مکمش چون این گفت از آن پس به افراسیان ای پرهنر شاه با جاه و آب چرا جنگ یا آمدی با پا چرا کشت خواهی مرا بیگنا سپاه دو کشور پر از کیم کنی زمان و زمین پرزنبرین کنی چونین گفت گرسی وزی کمخرند از این سان سخن خود کی اندر خورند گری در چونین بی گناه آمدی چرا بازده نزد شاه آمدی پذیر شدن زیندشان راه نیست چمان و سفر حدیه شاه نیست وسیاب با, با شنیدن سخنان گرسی بس فرمان حمله می دهد یک هزار مرد ایرانی همراه سیاوش همه جوان و دلیر بی آنکه دل نبرد را داده باشند به دست سپاهیان توران کشته می شود از زخم تیر و نیزه پیکر سیاوش غرق در خون است سیاوش توش و توان از دست داده از اسب سیاهش سرنگون می شود برگردانش پالهنگ حلقه چرمینی انداخته دو دستش را از پشت می‌بندند خون از چهره ارغوانی شاهزاده دلیر فرو می‌چکد و بدینسان پیاده او را به سوی سیاوش گرد می‌برند آنگاه افراسیاب به سپاهیانش دستور می‌دهد او را به کناری راه برده سر از تنش جدا سازد چو گفتار گرسی و افراسیاب شنید و برامد بلند افتاب به بفرمود تا تیغ تیز کشند و خروشند چون راست خیز همی گفت یک سر به خنجر دهی بر این داشت کشتی به خون برنهی از ایران صفح بود مردی هزار همه نامدار از در کارسان گرفتند گردند در اونشان چو گرد همه پشته گشتند مردان من به تیر و به نیزه به خسته شاه نگونند در آمد پشت سیاه همی گشت بر خاک نیزه به دست گروی زره دست او را ببست نهادند بر گردنش پال هند دو دست از پس پشت بسته چو سن. دوان خون از آن چهره ارقوان چنان روز نادیده چشم جوان همی تاختندش پیاده کشان چنان روزبانان مردم کشان برفتند سوی سیاوخش و پس پشت و پیشش سپه بود گر کنین گفت سالار توران سپا اندر کشیدش به یک روی راه کنیدش به خنجر سرستن جدا به شخی کارگز هرگز نروید بیا بریزید خونش برانگر خاک ممانید دیرو مداری مدارید سپاهیان افراسیاب با شنیدن دستور افراسیاب از او میپرسند ای پادشاه گناه سیاوش چیست که او را می‌کشی تو سری را از تن جدا می کنی که تاج و تخت بر او خواهد گریست به هنگام شادی درختی مکار که میوه و برگبارش زهر باشد آری این تنها گرسی و ذکین و یارانش هستند که خواستار کشته شدن سیاوشند دیگر سپاهیان همه مهر سیاوش را در دل دارند بخت بد که در آن روزگار مهنت و بد پیران خردمند نزدیک سیاوش نبود تا به نجات او بشتابد اما برادر کوچک او پیلسم در آن دقایق دردناک شاهد این خونریزی بیرحمانه بود پس به افراسیاب فراوان پند می دهد که شتاب به خرج ندهد کاری نکند که جنگ و بار دیگر به توران زمین بازگردد پیلسم به افراسیاب می گوید کسی را میکشی که پدرش کیکاووس است و پرورندهش رستم بدان که دیگر دلاوران ایرانیز به خونخواهی سیاوش به توران خواهند آمد و نه من و نه مانند من و نه هیچ پهلوان دیگری تا به رودر رویی با آنان را نخواهد داشت پیران برادرم صوفگاه خواهد آمد تا آمدن او از ریختن خون سیاوش دست بدار مگر نیازی به این کار نداشته باشی آری سپاهیان توران نیز مهر شاهزاده بیگناه ایرانی را در دل دارن. چون گفت با شاه یک سر سپاه از او شهریا را چه دانی گناه؟ چرا کشت خواهی کسی را که تاج بگرید به روزار با تخت آج؟ به هنگام شادی درختی مکار که زهر آورد بار او روزگار؟ همی بود گرسی وز بدنشان به بیهودگی یار مردم کشان که خون سیاوش بریزد به درد که از او داشت در دل به روز نبعد ز پیران یکی بود که در بسال برادر بود و فر و کجا کجا پیلسم بود نام جوان یکی پرهنر مرد روشن روان چنین گفت با نام پیلسم این شاخ را بار در دست و قند زدانا شنیدم یکی داستان خرد شد بر آن هم داستان که آهست دل کم پشیمان بود هم شفته را هوش درمان بود شتاب و بدی کار احری من است پشیمانی جان و رنج تن است سری را که باشی بر اون پادشاه به تیزی بریدن نبینم روا ببندش همیدار تا روزگار بر این بر تو را باشد آموزگار تو باد خرد بردلت بر دلت از آن پس فرا سر بریدن سزه بفرمای و اکنون تو تیزی مکن که تیزی پشیمانی آرد ببن سری را کجا تاج باشد کلاه نهشاید بریدهای خردمنگ شاه ببری سری را همی بیگناه که كاووس و رستم بود کینه خواه پدر شاه و رستمش پروردگار بپیچی به فرجام از این روزگار چو گودرس و گرگین و فرهاد و توس ببندند بر کوه پیل کوس دمند سفه گب پیل تن که است بر چشم و انجمن فری برز کاووس در رند شیر که ندیدش کس از جنگ سیر بر این کن ببندند یک سر کمان در و دش گردد پر از نیز فر نه من پایدارم دارم نه مانند من نه گردیز گردان این انجمن همانا که پیران بیاید بگاه از او بشنود داستان نیست شا مگر خود نیازد نیاید بدین مگستر یکی تا جهان است که گرسی و زبدنهاد زبد بفراسیاب میگوید به حرفهای چند جوان گوشت مصفا. می میبینی که کرکس ها اینک بر جسد ایرانیان کشته امروز تو نشسته تو نیز اگر از کین به ترسی سرنوشتی چنین خواهی داشت به سخنان بیهوده هرکس گوشت مصفا اگر سیاوش اشاره کند از روم و چین گرز و تیر بر ما باریدن خواهد کرد. بخشش سیاوش مانند آن است که پای روی دوم ماری گذاشته او را زخمی کرده باشی و حالا بخواهی با دیبا ترش را بپوشانی اگر خیال امان دادن به سیاوش داری من ناگزیر از ترس جانم به گوشه دور افتاده ای خواهم به دو گفت گرسی و از ای حوش من به گفت جوانان هوا را مبند از ایرانیان دشت پر است. گر از کیم به ترسی تو را این بس است همین بچه کردی تو را خود نبس چه خیر همی بشتوی رای یک سیاواش سیاوش چو بخروشد از روم و چین پر از گرز و شمشیر زمین سپردی دوم ما رو خستی سرش بپوشید خواهی به دیباب برش. یعنی دونج او را به جان زینهار دهی من نباشم بر شمیان به بیقولهی خیزم از بیم جان مگر خود سرایت بزودی سمان زنسو دمور و گرای دو پهلوان تورانی که در نبرد و بازی سیاوش هر دوی آنها را به آسانی از پشت زین بر گرفته بر زمین زده بود کینه جویانه این هنگام را هنگامه انتقام گرفتن دانسته با گرسی بز پست و خائن هم صدا شده به افراسیاب میگویند سخن برادرت را بپذیر و دشمنت را از میان بردار این است سر ایرانیان که در دست دارند دل بدسگاران و بدندیشان خود را با بریدن این سر بشه کرد. دیگر اکنون کار از کار گذشته یک هزار ایرانی را اینک کشته و تباه کرده. نگاه کن که شاه ایران به خاطر این کرده با تو چه خواهد کرد. با انگهی اگر سیاوش از آغاز تو را نیازرده بود توانستی از گناهش بگذری. اما اکنون بهتران است که اون چه پنهان و چه آشکار در جهان نباشه. آری گرسی پلید و یاران اهلی منصفت او گروی و دمور هرچه در توان دارند به کار می تا افراسیاب سیاوش را امان ندهند برفتند پیچان دمور و گروی بر شاه توران پر از رنگ و بوی چندین به خون سیاوش مپیچ که آرام خواه در مسیج به گفتار گرسی رهنمای بیارای و بردار دشمن پاک زدی دام و دشمن گرفتی بدون مچش دست و خیر مبر تاب سرین است از ایران که داری به دست دل وقت گالان به باید شکست سپاهی بر این گونه کردی تباه نگر تا چگونه بود باتو شاه اگر خود نیازار دیت از نخست به آبین گنه را توانست شست کنون آن بهایت هایت که او در جهان نباشد پری آشکار و نهان افراسیاب در پاسخ برادر و دستیاران بدنهاد او با انها من خود از گناهی ندیدم ولی ستارش ناسان گفتن سرانجام از او به من بد خواهد رسید خوب می دانم اگر اینک خونش را بریزم ایرانیان گرد کینجویی برپا کنند و به توران زیان رسانند و غم و درد من خواهد شد از سوی دیگر رها کردن و بخشیدنش بدتر از کشتن اوست. که کشتنش خود برای من رنجاوردست نه خردمند نه بی خردان هیچ کس نمیتواند در برابر خواست آسمان چارجویی جویی کنند بدیشان چون این پاس چا از او من ندیدم به دیگه کنم ولی کمز گفت ستاره و به فرجام از او سختی آید بسر ولی دونج خونش بریزم به چین یکی گرد خیزد از ایران زمین به توران گزند مرا آمده است، قم و رنج و بند مرا آمده است. رها کردنش بدتر از کشتن است همان کشتنش درد و تر است با مردم بکمان نداند کسی چاری آزمان فرنگیس با شنیدن خبر اسیر شدن سیاوش و رسیدن پدرش به سیاوش گرد روی خود را خراشیده گریان و نالان خود را به پدر می‌رساند او در برابر پدر به سختی گریسته و خاک بر سر ریخته و به او میگوید چرا می‌خواهی مرا بر خاک بنشانی چرا دل به فریب بستی و بلندی را از پستی نمی‌بینی و سر بیگناهی را از تن جدا می‌کنی سیاوش که ایران را ترک کرد از جهان به نزد تو آمد شاه ایران او را به خاطر تو آورد و او چنان تخت و تاجی را برای نگه داشتن پیمانش با تو رها کرد چرا بی گناه بر من ستم می مگر نمی دانی چه آن کس که بی گناه در چاه بدبختی است و چه آن کس که با تاج بر گاه تخت پادشاهی است هر دو سرانجام جایشان در خاک است از اختر و ستاره هم فرود آمده در گور و مقاک جای خواهند گرفت. با حرف های گرسیوز بدنهاد خود را چون درفش و پرچمی در دست باد به جهانیان مشه ناسان دیدی که فریدون بازه ها چه کرد؟ دیدی که من اون چه با تور و سلم بزرگ چه کرد؟ اینه که کاووس و رستم زنده هم جهان از رستم میلرزن گودرز بزرگ زنده است که شیر و پلنگ از گرزش ترسان است. اگر چنین کنی آب در کینجوی سیاوش سیاه خواهد پوشید روز بر افراسیاب نفرین خواهد کرد تو بر خودت ستم میکنی و یک روز این سخنان مرا به یاد خواهی آورد تو در شکارگاه سرگرم کشتار شکار نیستی تو خون شهریاری را میریزی که تخت و تاج تو را برای کشتنش نفرین خواهد کرد آری فرنگیس گریان به پدر میگوید دوران زمین را به باد مده پریگیس بشنید رخ را بخست میان را به زنار خونین ببست پیاده بیامد به نزدیک شاه. به خون رنگ داده دروخ ما به پیش پدر شد پر از درد و باک خروشان به سر بر خاک به دو گفت ای پر خونر چرا چهت خواهی مرا خواهی دلت را چرا بستی اندر فریم؟ همی از بلندی نبینی نشید؟ سر تاج داری مور بیگونا، گناه که نبسندد این داور هور ما سیاهش که بگذاشت ایگان زمین همی از جهان بر تو کرد آفریم بی آزرتش از بحر تو شاه را چنان افسر و اخت و بیامد تو را کرد پشت پنام کنون زود چه جویی که بردد ما مکن میگنم بر تن من ست که گیتی سپنج است بر باد و دم یکی را به چا هفت کند بیگنا یکی ما کلا بر نشاند نگاه سران جام هر دو به بخاکند برم از اختر به چنگ مقاکندرم به گفتار گرسی وز بدنهان درفشی افشی مکن خیشتن در جهان شنیدی کجا زافی گرد ستمگار زه تازی چه بود همان از منو چه شاه بزرگ چه آمد به تور و به سلم ستور کنون زد بر گاه کاووز شاه چو دستان و چون رستم خوا جهان خوا هم همتن بلرزد همی که توران به جنگش نیرزد همی چو گودرز کرز گرز او روز جنگ به درد دل شیر و چنگ پلن چو بهرام و چون زنگی شاوران که نندی شد از گرز گنداوران نشانی همی در زمین کجا برد خون آورد بار کین؟ با چین چ سیش سیاه شد کند روز نبرین بر یا سه بر تن خیشتن و سییا دایت گفته ها ب من در شکاری که گفت کرد و گر آهوان را به شورفگنی همی شهریاری رو بایی زگاه که نبرین کند بر تو تخت و کلاه مد شهر توران بخیره به باد نباید که روز بداید یا رنگیست باف در به خشم و اشک سخن میگوید وانگاه چون روی همسر بیگناهش سیاوش را میبیند روی خود را به ناخن خراشیده بقان و فریاد برنیاورد دل افراسیاب بی رحم بر دخترش میسوزد پس او میگوید برگرد و اینجا نمان تو چه میدانی خواسته من از این کار بدی که میکنم چیست وانگاه دستور میدهد فرنگیست دخترش را در اتاق تاریکی در کاخش زندانی کنند. به گفت این روی سیاوش بدید دروخ را بکند و فقان برکشید. دل شاه توران برهو برد بسوخت. همی خیره چشم خیرت را بدوخت. به دو گفت برگرد و ای درمه پای. چه دانی که از این بد مرا چیست را به کاخ بلندش یکی خانه بود. فریگیس از آن خانه بیگانه بود. بدان تیرگی در در خانه را بند برساختن آنگاه گرسیب از ناجوان مرد بانگاه به گروی ستمگر اشاره کرده که کار سیاوش را تمام کن گروی خود را به سیاوش رسانده موی سر او را به چنگ گرفته به روی زمین کشانش میکشد در آن هنگامه درد و خاری و تنهایی سیاوش با خداوند سخن گفته از او میخواهد که از پشت او فرزندی به جهان آورد که از دشمنانش کین او را بستاند و آیین او آیین پاکی و راستی و بخشش را در جهان تازه سازد پیلسم مهربان برادر پیران پشت سر سیاوش که اینک او را به مسلخ و قربانگاهش میبرند گریان و اشک ریزان به راه میفتد سیاوش با دیدن او به وی میگوید درود مرا به پیران برسان بگویش که روز گار با من چه کرد من از پیران اینگونه امید نداشتم که تنهایم بگذارد او به من گفته بود با صد هزار مرد زرهپوش و سوار روزی که وقت از من برگردد یار من خواهد بود اکنون این چنین خار پیش گرسیوز به راهم می و هیچکس کس یار من نیست که دل بر من بسوزاند. آری این گرسیوز است که فرمان کشتن سیاوش را میدهد. نگه کرد گرسیوزند در گروی گروی ستم بپیچید روی بیامد چو پیش سیاوش رسید جوان مردی و شرم شد ناپدی بزد دست آن موی شاهان گره به خاری کشیدش به روی شگه سیاوش به نالی با ای برتر از جای و از روز گاب یکی شاخ پیدا کن از تخم من چو خورشید تابنده بر انجمن که خواهد از این دشمنان کین من کند تازه در کشور آین من همیشد پس پشت او پیلسم دو دیده پر از خون و دل پر غم سیاوش به دو گفت پدرود باش زمین تار تو جافدان پوت باش درودی من سوی پیران رسان بگویش که گیتی دگر شد بسان به پیران گونه بودم امید همه پند او باد و من شاخ مید براه گفته بودو که صد هزار زرهدار و برگستوان بر سوار چو برگرددد روز یار تو هم بگاه چرا مغزار تو هم کنون پیش گرسیو در اندردوان پیاده چون این خار و تیغ روان نبینم همی با من کسی که به شدیزار بر من بستی آری گرسیو و گروی و دمور ترین و نامرد ترین مردان افراسیاب سیاوش را آنقدر پیاده میبرند تا از لشگر و شهر دور میشمند اینک به دشت رسیدن گروی از گرسی و از خنجری میستاند آنگاه انگاه را که چون پیلی زخم خورد ناتوان شده است بر کنار تشت زرین می نشاند و سر پرشکوهش را از تنش جدا می کند انگاه خونه او را در گوشه ای از دشت بر زمین می ریزند جهان باد صحبینی وزیدن می گیرد که گرد و قبار سیاهی را چنان در هوا می پراکند که زمین و زمان را تیرگی فرا میگیرد ماه و خورشید از دیدگان پنهان می شود هیچ کس کس دیگری را نمی تواند ببیند و همگان بر گروی خون ریز نپرین کند چون از نشگر و شهر، اندر گذشت کشانش ببردند هر دو و بدشت زگرسی آن خنجر آبگون گروی زره بستد از بحر خون پیاده همی برد مویش کشان چون آمد بهدان جایگاه جای نشان بیفگن پیلش یا به خاک نه شرم آمدش سو بنیز و نباک یکی تخت زرین نهاده پرک جدا کرد از آن سر به سیمین سرش بدینسان زندگی پررنج شاهزاده ایرانی سیاوش پاک نهاد به پایان رسید گروی زره این پسترین مردمان خون سیاوش دلی را که در تشته زرینی ریخته بود در جایی که افرا سیاب گفته بود بر دشت هاشید عبرهای سیاه آسمان را پوشندند زمین در تیرگی فرو رفت و باد من به جایی که فرموده با تشت خون یه رویز برد و کردش نگون یکی باد با تیر گردی سیاه برآمد بپوشید خورشید به ما کسی یک نگر را ندیگند رو گرفتند نفرین همه بر سیاوش مهربان بیگناه دور از ایران کشته می خون او در قربت دور از عشق بزرگش ایران بر خاک بیگانه پاشیده می شود. به یاد آوریم عشقهای او را آن هنگام که شرخهای ایرانی را پدرود می کرد. به یاد آوریم پیران مهربان و خردمند را که اگر به هنگام رسیده بود شاید سوار سرنوشت به راه دیگری می رفت و به یاد آوریم زنی را که آغازگره این مهنت بزرگ بود سودابی فریب کار به یاد آوریم که کاووس کین توز و دور از خرد را که روح و روانش چنان اسیر عشق احریمنی سودابه بود که پسر را به قربانگاه فرستاد و سرانجام به یاد آوریم رستم را که پس از سوی سهرابش اینک باید به سوی سیاوش بنشیند آری اینک پیران با شنیدن خبر کشته شدن سیاوش چه خواهد کرد؟ که کاووس چگونه بارنج پشیمانی دست به گریبان خواهد شد؟ چهکس تعم بادفره کاری سودابه را به وی خواهد چشانی؟ رستم دلیر با شنیدن خبر مرگ سیاوش چگونه طوفانی در جهان آن روز برپا خواهد نمود و سرانجام ایرانیان چه خواهد کرد آری سیاوش کشته می شود و بانگ رسا و آمیخته با خشم و و فردوسی بزرگ سوگ مندانه از دیوارهای تو در توی زمان میگذرد و اینک به گوش ما می رسد چو از سر من دور گشت آفتاب سر شهر درآمد بخواب آمد بخوا. چه خوابی که چندین زمان برگذشت نجمبید و بیدار هرگز نگرشت چو از شاه شد تخت شاهی توهی مخورشید بادا از سر و سهی چپ و راست هر سو تابم همی سر و پای گیتی نیادم همین یکی بد کند نیک پیشایدش جهان بنده و بخ پیشایدش یکی جز به نیکی زمین نسپرد همی از نژندی فرو پش برد مداریچ تیمار با جان به هم به گیتی مکن جان و دل را دوشم یکی دان از او هرچه چه همی همین که جاوید ما تو نپای